هشتمین دوره جلسات علمی فکری و اصلاحی سال 1400 صخانه مالانه محمد مین اجرا و زاب مرکز علم قرآنی سوره. بسم الله الرحمن الرحيم نحمده و نصلي على رسوله الكريم. إن الله وملائكته يصلون على النبي. يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وصلموا تسلما. اللهم صل على صيده ومالانه و محمد وعلی و علیه و اصحابیه و بارک و سلیم علی ما درست واجهانی شماهی جلسه و دیوان و تشریف و اللہ الله را بولی شما را جزا خیر بده ما درس خدمت واجهانی تبریک آرزو کنی الله رب بولی زادی جلسه آوتبارگاه قبول و فرمانید دومی مرغوبی ما شما برال یه منطقه تو کانه میشمی کلی بلوچستانا می احل سنتا کم روچی ما شما ایک مزنی حادثه تکان دهندهی که چه جدائی حضرت مولانا عبدالعزیز رحمت اللہ علی 20 سال پیسارتی تقریبا ما شما شاید تین یہ منطقیان تو که حضرت مولانا عبدالمجید حفظه الله شیخ الحدیث او واجه جهلاد بورزاد بری تبیچار زاهدان واجه آواز بلندد بری بری ما شما دید کنرک واجه آواز بلندد بری سرباز و بری پیرانشار واجهه صدا بلندد بل برال مئ شمی, مئ شمی شانس کم که زبر نا تو برال واجه ای ملکا وایل بکن تو دیگه ملکی برو بل احتغربان ما چند وقت پیسارتی حضرت مولانا عبد المجید حفظ اللہ خدمتا محاضر بیتا واجا وطی دوستی مطابق جو اس کو عبدالعزیز چطور رہی شمارا دوستین چطور رہی من واجا هر میدان تو کہ عبدالعزیز ایچ دروستان دیمات رہی جوان ایچ دروستان دیمات رہی و شیرانی چوک شیر با مل بازم روچی ما شما یہ مزنی حادثی یہی کہ پیش آت کا گا ما اولا ماچی بوکشی ما کئی رات ت بلالا ما درو قابل تحصیلیت نیچه حضرت مولانای جدایی حضرت مولانا یک اخلاق لحاظ توکا برال کامل اجد رو واجهان سان انتی دیگه نیاز نیچه که مردم بری بری کشی مکل و بلوچانو کشی مورده میری تیجی رنده توسیح پیکنه بل حضرت مولانا ما شما دیدتگید که اخلاق آدرو مردم متحصر تن برال اللہ رب و لعزت این شپیشا پاک واجهان اید قبر آپور نور وار و کام آشمات رو دعا بلودین و ای وقت هن دعایی کن من مازراد خواهی کنم چه حضرت مولانا سعی زوده من از جلد واجه سخن رانی آسی من ها دیگ سو رته من پر از دهگی جردا ی دکش واجه بیانی مفکو کو واجه بیانه مکان شرکت کنن و پد واجه در دعای کنم او سفر را ادامه دهید برال نی واجحان پرال پیش نهادک دوایش ما را داتات ما حن چ ویدبی مزنیمات دروس خدمت واجان گا معذرت خواهی کنیم ما شما دروتی دلوا الله وله بکنه داستان الله نمگا چیز بکنه الحمدلله رب العالمین ولاقبت للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین محمد وعلی اله واصحابه واهل بیته اجمعین ربنا أعطنا ما وعثنا على رسولك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد ربنا لا تأخذنا إن نسينا ربنا لا تأخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقه لنا به ربنا ولا تحملنا ما لا طاقه لنا به ربنا ولا تحملنا ما لا طاقه لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا انت مولانا انت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين فانصرنا على القوم الكافرين فانصرنا على الظالمين فانصرنا على الظالمين اللهم ان نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم اللهم ان نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم اللهم وفقنا لما تحب وترزى من القول والفعل والنية والعمل الصالح والإخلاص, والإخلاص اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والإصيان اللهم جعلنا من الراشدين یا الله <سؤال> می دسته بارگاه هستم یا الله می دسته حالگاه برمگردیم اے الله می دعایا قبول بفرما اے الله تی نیکی بندیاں دیوانه یا رب العالمین اے الله تی نیکی بندیاں اے دا یا رب العالمین اے الله مسافر چ دیر دراجدا نشتاں تی الله حاضرن یا رب العالمین اے الله می درستانی دسته بارگاه هستم یا رب العالمین یا الله شفیق شفا می دسته بارگاه هستنا تی پاکی لوگا اے مقدسین لوگا می دستی بارگاه چیستن یا اللہ یا لمی دستان حالی گها برمگردین یا اللہ. ای می الهی قبول بفرما ای می الهی قبول بفرما یا ل الهی نشاستی که مرا گرگ بیت رب العالمین ای ل الهی نشاسته توت قبول بفرما ای قبول بفرما ای ل واجه سخن رانا و واعظان ای اللهی ده بیان فرمائید تا ای ل بیانا می داخل بفرما ای ل مرا چه اخلاص و معال معاملات بفرما ای مرا چه اخلاص و معاملات بفرما العلماء گرامی مات اے اللہ علماء, علماء سرشناس یا رب العالمین اے اللہ می علماء یا حفظ بفرما اے اللہ می علماء احص بفرما علماء علماء یا اللہ علماء, علماء یا بفرما را چ علماء جداد یا رب العالمین امتحان کو ازمائش تو که در مده ای اللہ یا اللہ روچی کہ دیوانان تو که یا رب العالمین میمان ویشی شیخ الحدیث حضرت مالان حسین پور یالا اللہ زمانی اکی دیوانان مهمان ویشا مولانا محمد دیغان یا ربا یا اللہ ما حاضر دیوانانی یا اللہ مجلس رونا مفتی خالد ہے یا ربا یا ما زمانی حاضر تھی تھی یا دیوانانی رونا عالم متوازه مولانا مولانا عبد الحمید دیده یا ربا اے لمرمادر دستا داتے ہیں اللہ اے اللہ شفیں شفاء لا می دستے بارگاہ چستا یا اللہ اے ای اللہ شفیں ای شفاء اے اللہ شفا ای شفا ای ای پر نور منور بفرما اے اللہ العالمین انی قبر پر نور منور بفرما اے باقی مان دگان یا رب العالمین اے اللہ واجان پوش یا رب العالمین بہترین پوشت بفرما اے رب العالمین اے اللہ چواجان چو اخلاص یا اللہ جان سوز و گدازا اے لا یک یا لا استے اے اللہ اے بخش ما را عطا بفرما اے رب العالمین اے لا ال عالمین جو واشتہ دیوانہ کہ رب العالمین کہ توصیہ کرو کو صیت کرو اے کام امثال مولانا حسین پورا اے تئے رب ا اے اللہ ال عالمین اے اللہ اے لانی پشمن اتو نیک کو تاگان اے لار پشپتو صالح کو تاگان اے لانی تو مخلص کو تاگان یا رب العالمین اے اللہ ہمیں انوار عطا مصر جاری و ساری بفرما اے الہ العالمین روچ کے روچ تو کہ عالم جوان عالم متواضع یا رب العالمین حضرت مولانا عبد العزیز یا اللہ اے حضرت مولانا عبد العزیز پر نور منور بفرما یا لکبر پر نور منور بفرما یا علی سنت یا رب العالمین یہ مجروح و مجروح قلبوں یا اللہ چی رحمت دواا بفرما ی اللہ چی رحمت دواا بفرما ی اللہ حضرت موان عبدالعزیز بدل اللہ مرن نیعمل بدل اطاب فرما یا اللہ مرن بدل اطاب بفرما یا اللہ می دستی بارگاه چسته یا اللہ می دوین قبول بفرما ی ما گناہ کاری یو تی گناہ بندی ما یر یا اللہ زی سر تا پاز پا تا سر مخطاکار مجرم و جنایدکار ی لہ ما کاز دوتی نیکی یا اینجا زایر نا کنگو یا رب العالمین مالما قسمان نوشی ما پارسان یا لام یا لما درو اطراب کنگو یا اے لا ما گنہگار اے لا ما مجرم اے بل تو جللی یا ربام، اے لا تو جللی اے اللہ اے خطا کار و مجرمانی دستی بارگاہ سے اے اللہ اے لیں شپنگ شپہ مرچ گناہ پاک کو صاب فرما اے لا مرچ گناہ پاک کو صاب فرما کہ متاز ما اج ماتا متولد بھی تی رب العالمین اے لا مر ہر کسویدہ اے هر جایزی جوئی سی حاجت ہے یا اللہ می جوئی اجتنا پور به فرما ایلا مریض ها ایلا مریض ها شفا کامل اجلا نصیب فرما ایلا کسانی که ایلا بی اولاد ایلا ای اولاد و سالم نصیب فرما ایلا می یه مسجد جامع یا رب العالمین ایلا می مسجد جامع سوران یا رب یا رب ایلا چند وقتی ما امتحان گوازموش تو کان یا رب العالمین ایلا توش می گال اوشادانم الله الله نادانه وقت ندادن ای الله، ای الله ما را دانه بفرمای الله، ای الله ما را چین ندانی آدر بفرمای الله، ای, بفرما ای الله ما را وادمو تامیری نگاهی آربل دستگیانی تو کدوار دگی یا عالمین، ای الله تما را وحش نصیب فرما، ای الله تما را نصیب فرما، ای الله یا رب العالمین، ای الله علماء ماي اختلاپا بارچیده بفرمام ای الله بارچیده بفرما. یا لی علماء اونی یعنی برکت آکدانش تگن یا رب العالمین ای الله ی اختلاف و دستگیان آم بردیده الله ای الله یا رب العالمین ایدا هر کسی ای الله نشته ای الله هر غرض آت که ای الله هر نیت آت که یا رب العالمین ای الله تایی محبوب کرار بدهی الله ای الله کیامت روشه الله ما مجرمی ای ما دستی بارگاهی استن یا الله تا رو روشه رسول الله صلی الله علیہ وسلم شفاعت اللہ ما یکامبلی یا کامبل نیست؟ ایلا، تو مرا کامبل بیفرم کیا مترجع مار رسول دستا حوز که از سر مرا نصیب بیفرم؟ اے مرا کیو مت روچا اے اللہ چھ دیوانہ بلاہیں و شر اے تو قیامت روچا اے اللہ تو تین اے اللہ انکم تائے رسول اللہ گتا ربکم کما ترون القمر فی ليله البدر ایلا اللہ تو چار دیمہ اس مچ تور شما شم من ہن چ گیندو کہ اے اللہ ماروتی دیدار نصیب بفرما اے اللہ می چھ اے اللہ میں یہ چماخ ہیں الا میں یا رب العالمین اے اللہ الا مگر ہر گناہ کو تیری بلتے باندھے اے تی رسول امتیں اے اللہ مال اللہ اگر تو قیامت یلا بکنی که امتاز و یاو میوه المجرمون او مجرمان شما چنیی کانچ داوی بے ایلا ایلا اگر آر روچا میں پاگو پڑا که ایلا ہو دی میں یہ لباس اکمی مولای بے پوشت گئی یا اللہ ایلا تمور اگر جز مجرمان پاک بکنی یا اللہ پماچی سرات کا پماچی آبرو یہ سرات کا ایلا اے اللہ مرا قیامت روچہ شرمندہ اور سوال میں اللہ مرا قیامت روچہ شرمندہ اور سوال میں اللہ مرا قیامت شرمندہ اور سوال میں فرمو اے اللہ رسول دیدار نصیب فرما اللہ رسول دیدار نصیب فرما اے اللہ دیدار نصیب فرما اے مات یا می مات بی بی بی بفرما می اللہ می يا رب العالمین قیامت روچا کو حضرت علی ہم دیوان بفرما ایلہ مرد قیامت روچا کو صحاب ہم بفرما اے لموتیاں مالانے والا صحیح گیا یا اللہ اے جواں گوشہ کے موتیاں مالانے والا صحیح گیا یا اللہ اے جواں گوشہ کے ماں مجرے میں من اللہ لطف و تو مننت و ال مرا چگونا کو ص فرما؟ ال می جوان اسلام بفرماام ال می جوان اسلام بفرما ال می جوان اصلاح بفرماام اللا مرا چ دیگرانی خلام یا حفاظت بفرما ال مرا چ دیگرانی پردگی یا حفاظت بفرما؟ اللا توی بلوجقوم ما بلوج را جو اهداات اط بفرماام ال مرا چوبی تک مچ و اللہ الله اللا مرا چوبی مچو گرفتار الله ای اللہ مرا اللا اوتیزی ير انزاره ايلا اهل علم روغ توفيق عطا بفرما ايلا مي اهل علم حفظات بفرما ايلا مي اهل علم حفظات رب العالمين حضرت شيخ الحديث مولانا تشا بوهاري الله حفظات بفرما صحت و سلامتي عطا بفرما ايلا حضرت مولانا حسين پور ايلا واجه بهتريم پوشپدي ايلا ايلا تشا حفظات بفرما ايلا یا ال متواضع کمی دیمان هستین یا رب العالمین ایلا حضرت سیدی یا رب العالمین پوش پد دیوان تو هستین الا تاج کو مخلص تو تگنتو الا می سرپرست بیت چهپتو پیروگ یا رب العالمین الا ی سرپرست اون چه ایلا می حفاظت بفرما الا سرپرستان سرپرست حفاظت بفرما الا مرشان راه رهبندان رو توفیق عطا بفرما الا مرشان کادر بفرما اللہ زمانی که راند دست روان ترند ما مردک پرستن راند ما انتوسی پتاری پیکنه همه تا زندگی ما را شنید کادر که نکتوفیک ات به فرمان. همه ما را نزیر وقت توفیک ات به فرمان. همه ما را نزیر وقت توفیک ات به فرمان. می دواین قبول به فرمان. هر کس هر حاجتی هدایت می کنه یا الله آن حاجتام برای اردا پوره به مسافرانی که داره می تونیم از بالا می ندیم آن مسافران آسان به فرمان. می درست سفران آسان به یا الله این شپیه این دا ست تی برگه حچت الله موتی یا الله مدافعین مظلومین که ما یک یک دستا بازین دستین ده تا یا رب العالمین ایلی زمانی یا الله بسیج خهران چیفتو حضرت مولانا حسین پور اواز چیست کو یا العالمین بازین یا هدایت اطابی یا ربا ایلا مدافعی حضرت مولانا عبدالعزیز یکی آلما روم دست آده یا ربا ایلا یکی ما زیندان توک دور و زیندان توک قبطه یا اللہ اینشه پین شپایی اللہ علماء و احلی المشتگین تا حضرت مولانا فضل رحمانا زندان آزاد بفرمان اما حضرت مولانا یا چیزی زندان دانا بفرم اما بچ جرمی زندان یا رب العالمین اما تی صحابیانی پانکی جده یا اللہ مسلمانانی کشگا مریشم و مسلمان کشت کشار مکنه یا اللہی اے لالطت لطف کرمای اللہ حضرت مولانا ای عزا بفرمائیں۔ الی می ہر علماء کہ زندان چہ زندانان آزاد بفرما۔ الی می علماء آزاد مولانا استقامت عطا کوتا یا الہ استقامت نصیب فرمائے اللہ۔ استقامت نصیب فرما۔ الی طول عمر نصیب فرما۔ الی می دعا قبول بفرما۔ بفرما۔ الی می گستاخی ادبیاما بفرما۔ وصلی على خير خلقی محمد و علی آلی و اصحابی و اهل بیتی اجمعین آمین آمین آمین